مثل نهم عید و بهار آن سال هم، رسید و گذشت و تمام شد. مثل برق، مثل یک چشم به هم زدن. مثل همه دوران های خوش زندگی که با سرعت باد میگذرند و درست، برعکس ایام تیر روزی که انگار زمان سلانه سلانه و از سر میگذرد و عجله ندارد. یک موقع به خودمان آمدیم که اوایل تابستان بود و سالگرد عقد من و محمد و موقع رفتن زری. سه هفته آخری که زری ایران بود چقدر سرمان شلوق بود. مهمانی های پی در پی و رفت آمد و خرید و در عین حال دل هره. انگار حتی خود زری تازه رفتنش را باور می کرد. زری نگران بود و من و مریم قمگین بودیم. سه چهار روز آخر دیگر خواب و خوراک و شب و روز همه قاطی شده بود. سه شب مانده به رفتنش مادرم یک مهمانی بزرگ گرفت. و همه ی قوم و خیش های عروس و داماد را دعوت کرد. شب رفتنش هم محترم خانم همه را دعوت کرد. ولی آن شب خانم جون که حالش از عصر خوب نبود، عصر خواهی کرد و نیامد. زری سر شب خودش آمد خانه ما تا از خانم جون خداها کند. خانم جون انگار که یکی از نوه های خودش راه دور برود، نگران و غمگین بود. بخچه ترمئی را که زری خیلی دوست داشت، به عنوان سر راهی به زری کادو داد و صورتش را بوسید و از بالای عینکش با مهربانی چند لحظه توی چشمهای زری که نم عشق داشت خیره شد و گفت این یادگاری رو از من داشته باش اینا یک جفت بود، یکی مال تو، یکی مال مهناز، که خدا می دونه اندازه مهناز دوست دارم بعد همونطور که دست زری توی دستش بود گفت ایشالله که سفید بخت بشی و هر جا هستی خدا نگهدارت باشه زری یک دفعه زد زیر گریه و خانم جون همونطور که دست به سرش میکشید گفت گریه نکن مادر مسافر خوب نیست گریه کنه به سلامتی عروسی گریه برای چیه؟ میدونم قربت هست دوری هست و دلت گرفته اما مادر جون زن وقتی شوهر کرد دیگه همه کس و کارش اول شوهرشه مبادا بری اونجا بیقراری کنی و جای مرهم دل اون بنده خدا بشی بار دلش مردا طاقتشون به قصه از یک بچه هم خصوصا اگه زنشون هی بیخه گوششون نق بزنه هر وقت دلت گرفت سوره ول رو بخون با توجه هم بخون تا دلت آروم بگیره یار غریبونه، ولی پیش شوهرت نارومی نکن مادر، زن باید آستر زندگی باشه حالا اگه تو تعتقاری هستی و نوه خودم یکی دونه گناه شوهراتون که نیست مادر جون، هست؟ کم کم با شوخه های خانم جون عشق زری بند آمد و آخر سر پس از آنکه چندین و چند بار صورت خانم جون را بوسید خم شد تا دستش را هم ببوزد که خانم جون نگذاشت و هرچه من و زری برای بردنش به مهمانی اصرار کردیم قبول نکرد و گفت مادر، حالم روبران نیست وگرنه خودم از خودم بود بیام، شماها برین خوش باشین. رفتم، اما بعدها همیشه خودم را لعنت کردم که چرا خانم جون را آن شب تنها گذاشتم. آن شب زری تمام مدت عشق ریخت و توی فرودگاه هم موقع خدافزی آنقدر توی بقله هم گریه کردیم که صدای محمد درآمد. احساس عجیب و بدی داشتم. دل شوره عجیب که آدم وقتی از کسی برای آخرین بار خداحافظی میکند دارد دلم را بیتاب می کرد انگار فکر میکردم دیگر زهری را نمی بینم و شاید او هم همین حس را داشت که آرام نمی گرفت توی راه برگشتن محمد قرق فکر آرام رانندگی میکرد و من قرق اندوه بی اشک میریختم می ریختم خوب بیاد دارم آن شب شبی مهتابی بود. ماه قرص کامل بود و هوا صاف. ولی از آنجا که دلم گرفته بود بیشتر از قرص ماه زمینه سیاه آسمان را میدیدم. در طول مسیر هرچه محمد سعی کرد با حرف و سوال و صحبت به حرف زدن وادارم کند موفق نشد. تا اینکه نزدیکی های خانه یک دفعه مهناز هیچ می دونستی این دوستت کاملش هم به قشنگی خودت نیست. پرسان نگاهش کردم. دوستم؟ آها. کدوم دوستم؟ با لحن شخ گفت. اگه گفتی؟ من که فکرم خسته و مقشوش بود بی گفتم. نمیدونم خودت بگو. نه. فکر کن. خودت باید بگی. بدون فکر گفتم کی زری خندان گفت به به چشم زری روشن بفرمایید زری کی ناقص بود که حالا کامل شده خنده گرفت محمد همت از نکن بگو دیگه ای تنبل میخوای همه چی حاضر و آماده باشه نه بعد با انگشت ماه را نشان داد و من از خنگی خودم که چیز به این سادگی را نفهمیده بودم و از حرفی که در مورد زری زده بودم از ته دل خندیدم محمد باز با همان روش و همیشگیش فکرم را منحرف و حواسم را پرت کرده بود و من قافل از بدبختی که انتظارم را میکشید، حواسم به حرف و شوخی محمد جلب شد تا به خانه رسیدیم وارد خانه که شدیم نزدیک از آن صبح بود برخلاف انتظار که مطمئن بودیم خانم جون بیدار است، چراقهای خانه همه خاموش بود محمد گفت بالاخره یک دفعه شد که ما خانم جونو بیدار کنیم عجیب خواب موندن من در حالی که احتمال می دادم خانم جون توی اتاقش بیدارست گفتم من میرم صداشون کنم. هنوز هم هرچه فکر میکنم چرا آن شب چراغ اتاق را روشن نکردم متعجب میمانم. نور چراغ راه رو همراه من وارد اتاق شد و سایه ام روی دیوار روبرو افتاد. بزرگ و وحشتناک آرام صدا کردم. خانم جون و نزدیک تخت شدم. ولی خانم جون جوابی نداد به پهلو و پشت به من روی تخت خواب بود کنارش نشستم و آرام بازویش را تکان دادم خانم جون از اونو گفتنا الان نماز مومنا میره بالا سود باشین خانم جون خانم جون تکانهایم کمی محکمتر شد ولی خانم جون هیچ جوابی نداد با تعجب خانم چون رو به سمت خودم برگرداندم. چشم‌هایم از حیرت گشاد شد وحشت تمام وجودم را گرفت و بی آنکه دست خودم باشد دهانم با تمام قدرت به فریاد باز شد. خالوم چون با چشمهایی باز روبرو را نگاه می‌کرد. نگاهی آرام و ثابت و دستش در حالی که هنوز تسبیح تربتش لای انگشتهایش بود روی پاهای من که از ترس فلت شده بود افتاد سرد و یخ کرد هایی که از حنجره من خارج میشد انگار صدای من نبود حیرت وحشت تعجب و ترس از فضای تاریک اتاق و سایه خودم که روی دیوار روبرو بزرگ و ترسناک بود چشم های باز خانمچون و دستهای یخگر و سردش داشت مرا از پا در میآورد پاهایم به راستی فلت شده بود و چشمهایم خیره در چشم های خانمچون مانده بود حتی قدرت فرار از آن صحنه را نداشتم دهانم تمام وحشتم را با صداهایی که از اختیار خودم هم خارج بود بیرون میریخت چراغ روشن شد امیر، محمد و مادر و آقا جون سینه وارد و اتاق شدند. تکانهای محمد و امیر، التماسهای مادرم و صدا زدنهای آقاجون آقا جون هیچ کدام نمی‌توانست جلوی فریادهای مرا بگیرد. شک و ناباوری، و ترسی که وجودم را گرفته بود، آنقدر شدید بود که اختیار اعضای بدن و اعمالم را از دست داده بودم. آخر سر هم آب سردی که توی صورتم پاشیدند، تنها دهانم را بست. ولی قدرت عمل از من سلب شده بود. محمد بغلم کرد و از اتاق بیرون برد و من همانطور بحت زده میخواستم حرف بزنم. گرگی کنم، جیغ بزنم و خانم چون را صدا کنم. فایده نداشت. من که همیشه دریایی اشک داشتم حتی اشک هایم هم خوشگییده بود. قلبم در فشار بیامان غمی بینهایت و ناشناس فشرده میشد. غم از دست دادن غم فراق و هجران برای من قمی ناشناخته و گنگ بود. قمی درد، و نفس بر که راه را تا بر اشک هم بسته بود. خانه پر از جمعیت شد. صدای گریه، تسلیت و شلوقی فضا را پر کرد و من همچنان مثل مجسمهای گچی فقط نگاه می کردم. همه ی سیع دیگران برای اینکه مرا از آن حال درآورند آورند ماند. منظره ی چشمهای خانم جون و دست سردش. از جلوی چشمهایم کنار نمیرفت. صورتهایی که رویم خمی شد نگرانی ها،, ها، همه را میشنیدم ولی قادر به هیچ حرکتی نبودم. صبح شد. رفت و آمدها، تسلیتها، صدای گریه، آوای قرآن و چشم‌های گریان و نگران و غمزده. همه مثل فیلم سامتی از جلوی چشمهایم می گذشت. و من که بهت و ترس از پا درم آورده بود نمی باور کنم که خانوم جون دیگر نیست که تمام شد یک عمر خاطره یک دنیا عشق و مهر مظهر سالهای پرشمار امید و نومیدی مثل یک دفتر برای همیشه بسته شد ناگهان پتک آخر بر اعصاب کرخ شده ام فرود آمد. تابوتی بر سر دست از اتاق خانم جون در حالی که روگش ترم کشیده بودند خارج شد. لابلای صدای شیون و لا اله الله باورم شد که این خانم جون است. مادر بزرگ مهربان و خوش زبان من که بر روی دست دارد برای همیشه از این خانه میرود. کتریش هنوز کنار حوز بود. بوی تسبیحش انگار فضا را پر کرد و صدای پاهایش توی گوشم پیچید. من دیگران چشمهای شیطان و مهربان را نمیدیدم. کسی که از روزی که چشم باز کرده بودم کنارم بود. قصه گوی بچگی، همزبان همه گه دورانهای زندگی و سایه مهره همیشه همراه من، داشت برای همیشه میرفت. زیر لب و ناخداگاه گفتم. خانم جون. اشک به چشمم هجوم آورد. فریاد دوباره راه گلویم را باز کرد و بدون اینکه حتی خودم بفهمم چطور به جنازه که روی دوش مردها از من دور میشد رسیدم. خانم جون. خانم جون. خانم جون کجا میبرین؟ بذارینش زمین. نیروی فراتر از آنکه که بشود تصور کرد وجودم را در خودش گرفته بود. دوباره باید صورتش را میدیدم. کسی حریفم نمیشد. چنگی را که به رو انداز خانم جون زده بودم رها نمیکردم. جنازه را زمین گذاشتند و کنار رفتند. ترمه را کنار زدم. آنجا بود، مادر بزرگ من، یادواره همه دورانهای زندگیم، مهربان مادر سانی من، در حالی که چشمهایش حالا دیگر بسته بود، با موهایی به رنگ برف و صورتی مثل محتاب، روشن و آرام. خانم جون با آرامش خوابیده بود، گریه نمی کردم، زار می زدم. با تمام وجود یکی از عزیزترین عزیزانم را صدا میزدم و درمانده میخواستم درد تلخ و گزنده از دست دادن را با فریاد آرام کنم زجه میزدم و به وجودی که دیگر نفس نداشت التماس می کردم و سیل اشکم صورت خانم جون را خیست می فریادهایم با گریه دیگران به همامیخت هرچه سعی کردند دورم کنند فایده نداشت. مادرم با صورتی غرق اشک امیر و محمد را صدا زد. در حالی که هنوز با تمام قدرتم بازوی زوی خانم چون را نگه داشته بودم بغلم کردند و از خانم چون دور. در ماندل تماس کردم. خانم جونو نبرید. خانم چون بدون ما تنهایی جون نمیمونه. محمد تو نظر ببرنش ولی محمد با چشمهای اشکبار بار مرا عقب می برد و امیر حقق کنان کنار پدرم زیر تابوت را گرفت شیون بی سمر بود خانم جون بر سر دست از من دور میشد. به محمد التماس میکردم رهایم کند و ناخونهایم را با تمام قدرت توی بازوهایش فرو می کردم ولی فایده نداشت خانم جون و جمعیت با هم از خانه خارج شدند و من خرد و بیچاره صورتم را توی سینه محمد قایم کردم و زار زدم در جواب محمد که مرتب توی گوشم از من می خواست که آرام باشم فقط زار می زدم دورو برم شلوغ بود و هیاهو صدای اکرام خانم را شنیدم. محمد آقا، سلاح نیست ببرینش سر خاک. محترم خانم هم گریه کنان گفت. آره مادر، دیشب هم هول کرده. اگه بخواد اینطور کنه مریض میشه. بمونه بهتره. وحشت زده سر بلند کردم. نه، باید میرفتم. از سر درماندگی اشک ریزان به محمد خیره شدم که می پرسید. میشنوی مهناز، اگه بخوای اینطوری کنی، اگه آروم نگیری، نمیبرمت. با التماس نگاهش کردم. لبم را به دندان گرفتم که صدایم خفه شود. و چانه که از شدت گرگ میلرزید به اختیارم درآید. محمد که خودش هم چشمهایش از گریه قرمز بود، دوباره پرسید. قول میدی آروم باشی؟ سرم را تکان دادم. یعنی آنها فکر می کردند این اعمال اختیاری و ارادی است؟ در تمام طول راه تا گورستان اشک می ریختم. زندگیم از بچگی تا آن روز و خاطراتم با خانم جون مثل برق از جلوی چشمم می گذشت. شیرین زبانی هایش، مهربانی هایش، هایش، هایش، دعاهای از ته دلش، قرآن خواندن‌های با سوز دل و مناجات صحرهایش. نماز های طولانی و اول وقتش اسباب سماور با سلیقه و صبحانه هایی که از زمانی که به یاد داشتم از دست یا کنار خانم جون خورده بودم صدای پاهای خسته اش که به گوشم آشنا بود و خبر از وجودی مهربان در نزدیکیم می‌داد. موجودی عزیز که بدون او زندگی ما صفا و نورش را از دست میداد و حتی تشر گاه و بیگاهش که هیچ وقت تلخ نبود. اولین زخمی که مرگ و از دست دادن به جان من زد چه دردناک بود. تا آن زمان عزیزی را از دست نداده بودم و طعم تلخ جدایی و اندوه را این طور با تمام وجود حس نکرده بودم دلم میسوخت سوزشی بی امان و تحمل ناپذیر نمیخواستم و نمی توانستم باور کنم که همه چیز تمام شده یک دنیا مهر و عاطفه و گذشت و خاطره با قطعه یک نفس میرود که زیر خاک مدفون شود سیلاب اشک حتی سر سوزنی از سوز جگرم را کم نمی کرد. فقط جلوی فریادم را می گرفت. ناباورانه، پایان راه یک زندگی، یک دنیا، یک انسان را می دیدم که این بار چون عزیز من بود، برایم فاجعه بود. با سفارش های محمد که می خواست پیش مردها برود، کنار مادر و محترم خانم نشستم منتظر تا مادر بزرگم را از قصال خانه از آخرین هممام هر انسانی در این دنیا بیاورند هرچه می شنیدم شیون بود و فقان و هر چه میدیدم لباس سیاه بود و چشمهای اشکبار بار هرکس در ازای عزیزی اشک میریخت و فقان می کرد. و من هم با هم دردی عشق می ریختم چون که عزیزی از دست داده بودم نمی خواستم باور کنم آنکه در پارچه سفید پیچیده اند و بر او نماز می خانم جون من است پاهایم حسش را از دست داده بود همه به نماز ایستادند و من عشق ریختم از زمین بلندش کردند و خانم جون انگار عجله داشت باز با سرعت از من دور میشد تمام قدرتم را برای اینکه فریاد نزنم به کار می بردم. احساس میکردم فشار بغزی بی امان گلویم را سوراخ میکند بغزی که با اشک آرام نمی گرفت دندان هایم را روی هم فشار میدادم که صدایم در نیاید از ترس اینکه در این آخرین لحظات از خانم جون دورم کنند، باید خفه می شدم. تابوت را سه بار زمین گذاشتند و برداشتند و باز نزدیک دهانه قبر زمین گذاشتند. خانم جونم را می خواستند توی این خانه تاریک و تنگ زیر خروارها خاک مدفون کنند؟ لرزشی شدید استخانهایم را لرزاند. ترس، قصه، وحشت و اندوهی بینهایت و وصف ناپذیر داشت قلبم را پاره پاره می کرد. جلوی چشمهای وحشت زده من، امیر، علی، محمد و حاجاقا خانمچون را باز بلند کردند. آقا جون اشک ریزان پیکر مادرش را سرازیر کرد. وحشت تا مغز استخانم را لرزاند. آنجا توی آن گودال تاریک و تنگ و سیاه مادر بزرگ من بود که مدفون می آقاجون آقا جون را که به پهنای صورت عشق میریخت صدا زدند که صورت مادرش را باز کند. چیزی در درونم جوشید. این آخرین لحظه ها بود. به زودی تمام می شود. و من دیگر هیچگاه آن صورت عزیز را نمیدیدم. ناخداگاه شعر سوزناکی که همیشه ورد زبان خانم جون بود با صدای خودش توی ذهنم زمزمه شد. صدایی که لحظه به لحظه اوج می گرفت. در خانه تاریک گور در پیش دارم راه دور. کو هم نشیم جز و مور. استغفر الله العظیم. باز خروشی بینهایت وجودم را دربر گرفت و سوزاند. دهانم را به فریاد باز کرد و پاهایم را به جلو راند. باید یک بار دیگر می دیدمش. که سعی می کردند نگه هم دارند فقط بازوهایم را خراشیدند. این من نبودم. نیروی محبت و خون خود خانم جون بود که توی رکایم می جوشید و مرا به جلو می راند. زانو زدم و شیون کنان صدایش زدم. اگر دست امیر و محمد مانع نشده بود، شاید من هم افتاده بودم آن پایین. توی خانه ترسناکه خانم جونم. آقا جون لرزان و زاری کنان صورت مادرش را باز کرده بود و روی خاک میگذاشت. صورتی پرچین که با آرامشی ملکوتی به خواب رفته بود. فریادهای جگر خراش و بی آرام نمیشد. نمی توانستم ببینم و باور کنم و ساکت باشم. صورت خیس اشک آقا جون، شانه های لرزان از گریه امیر و علی و صورت اشکالود مادرم و عظمت مصیبتی که تا آن روز حتی بهش فکر نکرده بودم فراتر از توانم بود. دلم میخواست با ناخونهایم خاک را پس بزنم و به خانمچون برسم. وحشتی به عظمت و تاریکی مرگ وجودم را دربر گرفته بود. آنجا تنها زیر خروارها خاک خانمچون من چه میکرد؟ زورم به محمد که وقتی دید نمیتواند مرا کنار بکشد از زمین بلندم کرده بود و دورم میکرد نمیرسید. مشتهایم را توی ش می میکوبیدم و فریاد میزدم و خانم جون را صدا میزدم که احساس کردم دنیا جلوی چشمهایم سیاه می شود و صداها دور از هوش رفتم